اتدار ردیگی رو در حقیقت گرفتن جشن نهروز رو با این حال این حرفایی که من به شما می زنم ماله مثلا سه زار سال پیش یا قدیمتره این که می کنم اون از اون جدیدتر بود برای اینکه تازه نهروز منصوب جمشیده و جمشید پاچه ها اساتیری جمشید پاچه هاییست که در روزگاری بوده که ایرانیا و هندی هم جدا نشده بودن و گمشید مشترک یا و نوروز منصوب و او حالا یه دو سه کلمه بنده رجب به این این روز روز اول سال قرار گرفته ارض بکنم او این است که حالا شما می‌دونید که زمین به دور خورشید می‌گرده ولی تا ست ست پیش این قضیه رو نمیونستن فکر تران به دور زمین میگرده و مطلب مهم نیست اصلا برای اینکه میزان حرکت هر دو یه اندازه است. حرکت ظاهری خورشید مثل دو تا تران یکی حرکت میکنه اون یکی حرکت نمیکنه شما تو هر دون نشسته اون شکر در اون دره حرکت میکنه و حال ساکن بشن. این است که زمین رو چون در این ساکن ها میکردن خرشید متحرک گرفتن ولی به هر حال این میزانش 365 روز و تقریبا رفع روزه تقریبا میگه من یه خود کمتر از دو روزه 365 روز 5 ساعت و 46 دقیقه و 44 ثانیه یعنی 11 دقیقه و چند ثانیه؟ دوازده ثانیه، از 6 ساعت کنم حالا قدیم در ایران تقمیم به این ترتیب بوده که سی سد روز، یعنی دوازده تا ماه سی روزه میگرفتن شد سی سد شهت پنج ول میکردن که این پنج روز رو بهش میگفتن بحیزک مم. یا پنجه بنیمی کنیم یا وزد <تصفح> یا پنجه دوزدیده تو باید پنجه دوزدیدهش هم نمی گفتن یا خمسه مسترخه که <تصفح> همون ترجمه پنجه دوزدیده این دوزدیده همون معنی که می گیم سرتو به دوست دوزگینی به حساب نمیاد، معنیش پنجه بهش میگن و این پنج روز رو سرک رسیدن به انواد و این کار که میتنین روزی شیشون روید میتره حالا وقتی این کار بکنیم در حقیقت نزدیک 6 ساعت رو به حساب میگید خب شیش ساعت خیلیش مهمی نیست ولی چهار روز ساعت که چهار سال که بگداره این 6 ساعت دیگه روز یعنی یه روز میره تو سال چه سار که بگذاریم میشه ده روز ست چه ست که بگذاریم چه سد روز سه ماه ده روز یعنی یعنی بیستان آذر میشه نوروز روز بیسرامین فخردین فخردین در بیسرامین میگه کجا آنگه از گشت روزگاران در آذرمه بودی نوبهاران باهار با. و ازمه و این دوره هشکانیست، این داستان مال دوره هشکانیست فر اون روزگار به علت همین کمتر حساب کردن به میرفت اقعب موقع روزگار ساسانی فکر کردن که این رو بیان به جبران بکنن الان ما تقویم، و ما از تقویم نمیتون میانی هر ساعت رادیو رو واکنی، تلویزیون رو واکنی، تو هر دختری بری، تو راهن بری، تو بانک بری روز و ماه و سال و وسایل الکترونیکی که تا یک میلیونیم سانیه رو محاسب میپنند بلی در روزگاری که تنها وسیله ویدوی اطلاع و همگان فقط جارچی بوده که نمیشه هر چهار سال یه دفعه به همه منبکت جارچی روستند مثل که مثلا کبیسه کبیسه که میدونید اون سالی که سید سال روز میکنن تقریبا هر چهار سال که هر برن که هر نیست تا اگه چار سال یافت حساب کنیم یه دوازد دیگه زیاد رو مثلا حساب کردیم باز در دراز مدت اصول در سنجر یعنی از این دفعی میاد توی پر یا اون طرف این که تقریبا چیزه حالا جوزیات رو نمیگم برای که حسابمون روند بشه سرات بشه بر فایده ای که خیام هم رفته که سته تا چهار سال حساب کنن سبیسه چارمیل سال پنجم میگه و این نزدیک سر میزان میشه به اه, چیز اصلی این هم همجور حساب پرانگوشتیه ولی الان تمام همه سالها رو ثانیاش رو حساب میکنند یعنی حساب کن سال چند سانیه است بعد این سانیه رو حساب محاسبه میکنند ولی مثلا چه سال بعد دقیق حساب میکنند بنابراین اون گرفتاریه نیست اما در روزگاری که یک اصلا اینا نبوده چاب نبوده تقویم نبوده حساب نبوده کتاب نبوده چجور این کبیسه رو بکنیم؟ راحتترین رایی که به نظر شما آمده بوده این بوده که صد سال این حساب رو نگه دارن گفتم حالا حساب میکنیم رو روز یک تا صد سال میشه سی روز و بعد سی روز اضافه کنن به آخر یعنی سال صد ویست دو تا سن ماه بگیرن دو سی روز برمیگردن سر اول فرودی این سر کبیسه تا مدت ها هر صد و ویس سال اینو کبیسه میکردن یعنی سب میکردن بعدم از چهار سال پیش آگهه میکردن تو همه دهات، همه جاکه پلان، اون سال فلان یه ازفند اضافه کبیسه میگردن اما در دوره ساسانی هم تا اسلام یه رفتی این کبیسه رو نکردن، شلو پلو بودون اباخر بعدم اسلام دو دویت و سریعته الان باز نوروز سنتی که زردوشتی ها برن در آذربایجان سه بار کردن حالا برادران زردوشتی ما شعورشون میرسه که فروردین هم ولی فروردین نیست هلا که لزمه ولی اقلیت های دینی باید خیلی سخت محافظ کار باشه. یهودیان طورا بردوشتی نه برای اینکه کوچکترین راهی ایدن برای یه تاج نظر این سابقه میشه و همه مسائل دیگه‌شون داغون فکن میشه. میراثی که الان زردشتی‌ها دو تا نوروز میگیرن یکی نوروز سنتیشون واسه روز بر آیین زردوش که در آذر ماهه، یکی هم نوروزی که روز حیریه ایون به دانشا. برا میگیرن. میگیرن اما اون رو می‌گیرن به عنوان اینکه این زردشتی‌گریشون سر جاش بمونه. اگر علاقمند مند باشیم به این مطلب و راجع اید زردوشتی یا و اینا ارض کنم که اطلاعاتی دستگیریم یه خانمی هست به نام خانم بویس میری بویس خستال دانشتال لندن احتمالا الان بازشسته شده باشه یه کتابی نوشته به نام افرژن ها اونو را هست یعنید یه یه دیجه محکم زردشتیگری دیجه محکم ایرانی زردشتیگری این روز اکسفالد یونیورسیتی پرس چاب شده یک بار یک بار یا دو هم در امریکا چپ شد. الان گیر میاد آسفین اینجا. و توی این مقادیر زیادی از زندگی خصوصی زرداشتی هست برای اولین بار اونجا فاش میشی که بی او ای. این ما تا حالا هرچی راجب پاپیش از این کتاب هرچی راجب دین زرداشت میدنسیم از اوستا و از کتاب های دینیو درست نسیم که اسلام رو بایس در روی کتاب یاد میکیم. برای کتاب یه چیزیه ولی عاشق پشت پا و عاشق ابو دردا و عاشق امام زنلابدین و نمیدونم آجیل مشکل گشه های اینا توی کتاب دهای حتی نوشته نشده اینا رو باید رفت مردم زندگی کرد اینا در رو خود درداشته را نمیدادم به هیچ وجه مسلمان رو و هیچ کس از این مسائل فلان ها من یک خانم گلت رفته و این کتاب رو نوشته و این جوزیت را جبه ایدشون ازاش عروسی کردنشون با همه اینا سبز سبز کردن تمام جزئیات زندگیشون اونجا شهر کرده و از جمله نوروزشون که همجور که عرض کردم همین است که بنده عرض کردن در ایران به این تحتیب چیز بوده است ولی نوروز همیشه اول فروضی میده عبو ریحان تو کتاب الاسها الباقیش هزار سال پیش میگه که نوروز به دلیل اینکه در سال میگرده او رو منشای تمام موجودات تونستن در سات چطور میگرده؟ فهمیده از که ارزگرده که چیز میشه برجه اما خیلی خیلی اون که مسلمت این است که از میون جشن های ایران مهمتر از همه نوروز بوده حتی اقل شش روز و حتی ارچه یک ماه این جشن نگاه میداشته و ترتیب داشتیم. که روز اول مال کیا بوده که ظاهرا مال رجال حضرکان مملکت بوده روز دوپا مال دهقانان بوده روز سفا مال, مال بازرگانان بوده روز چهارم مال آمه مردم بوده روز پنجم مال کی بوده روز ششم یا نو خاصه خواسته نو روز شست پادشاه بوده هر جوری که دلش میخواسته و با هر کسی که دلش میخواسته اون روز رو پیگذرون با در دولانهایی که تجمبل زیاد میشد و اون زیاد میشد و, و عرض کنم که خوشگذارانی زیاد میشده هر کدوم از این دوله ها رو پنج روز میکرد یعنی شیش تا پنج روز که میشد سی روز و این تقطیب عمل میکردم این تشریفات نروزه و آب میپاشیدن به هم بعد مهادیر زیادی حدیث از پیغمبر اینا نقل کردن این خبر نوروز و خبر تجلیل نوروز اینا در روزگاری که پیغمبر عکم هنوز زنده بودن یعنی به ایران نایمده بودن عراقینا خبر نوروز به فسول عکم بسیده بود و تجلیل هم کرده بودن و این مسائل حالا یا هموطنان عزیزم اینا رو بعد درست کردن برای آبرومندی نوروزشون یا اینکه در حقیقت بوده نمیدونم به هر جد اگر هم بوده خیلی تعجبی نداره به دلیل احراب در اسمشونده ایرنی بودن و خرازگزار شوندن و هیچ اشکالی نداشت که جوزیات این مسائلی به این مسائل مهمی نبود. بعد هر جهت خیلی خیلی چیز میکردن و تجلیل میکردن و مهمانی رو نمیدونم مابقاشی رو باید سفا دادن همه چیز سبز سبز کردن به خصوص یکی از مسائلی که امروز سر با هم بچه ها هم. چه ها هفتین چیه؟ و خب این مسئله خیلی است فنده ارز کردم که تا اونجا که من خوندم، در هیچ کدوم از کتاب های قدیمی که به نوروز حرف دادن و این کتاب های کم هم نیستن، هیچ کدوم راجب هفتین حرفی نزد. لاقل لا, به این صورت سیر و سرکه و سما و سمن و سنبول و ننازی حرفای هیچ نیست. دو چیز رو منده ارز کردم که پیش ما ایرانیا و احیان چه همه ای دنیا بسیار مهمه یکی عدد دوازده است، یکی عدد هفت عدد هفت که عدد سر همه دنیا هفته، هفت سیاره، هفت فلس، نمیدونم هفت آسمان، هفت طبقه زمین، هفت اندام ظاهری، هفت اندام باطنی و همچین که برو من اون دکتر ماهین تو کتاب هفت و تحلیل علیہ نظامی کے نظام شد 700 مورثات ہزار murid آورده که هفت بہت اہم تھا۔ ہاں وہ سے ٹیم الان میگاں ہاں الان به یہ سادیہ پتہ نہیں کیا ہو جائے ولی چاش اس کنم که این به این تصیب بوده و ما عدد هفت در زن، عدد اوله به هیچی قابل قسمت نیست فاید قابل قسمت به عدد هم قاعده نده به خلاف تمام عدد دیگه عدد دادم از درست اکس اینه یک و دو و سه و چهار و شیش و مظلبش به 8 و بیس و چهار اگه هفت و بشه به نه و نه همه و به خودش قابل قسمت خیلی عدد قابل تقسیم به همین دلیل است که شبان روز رو به 24 ساعت و دایره رو به 37 درجه و سال رو به 37 روز 37 روز و 12 ماه اینا تقسیم کردن برای اینکه خیلی قابل هم این عدد 7 و 12 خیلی آراما مهم بوده پیش از اون که فکرشو بکنید و برای اینکه یه گوشه از این اهمیت رو بسیم بدن باید بگم تا مذهب شیعه دو تا شاقه بزرگ داره بزرگ پر این شاقه شیعه 12 امامی و شاخه مهم کوچیترش شیعه 7 امامی دوازه و همشه 19 19 هم عدد محدث باهایی آسد سال و که کرمه 19 ماه 19 روزه. بنابراین دوازه و هفت مهمیتی ما رول مهم میداشم این همه رو برای 7 سیم دارم عرش کنم که در کتاب عبوریان بیرونی آثار الباقیه آمده از هزار سال پیش که هفت چور سبزه و هفت چور تقم و قله رو در دربار شاه میکاشتن قبل از نوروز و منتظر می‌شدن بینه نه چجور عمل میاد اون قله هایی که اون دانه هایی که بهتر عمل آمده، اونا رو توصیح میکردن کشورزار تو تیدی سی سال بعد از عبوریهان در مروزانه خیام می دیمسه که دوازده تا جرز بلا آوردن در دربار پاتران و دوازده نو سبزه می کاشتن دوازده و این همون تشریف ها منطقه وقتی خواسته چیزه رو بده وقتی که شمالشده دوازده رو یازدت روشتن بیشتر یکی گشتی ها روشتن در حال اونم هم باز همین بوده که اینا رو بکارن بعد اون وقت توصیل می کنید از طرف که اینا رو بکاریم این دانه ها بهتر روش کرده امسال اینا رو بکاریم خیال می کنیم بنده این هفتین اولش مدناش هفت سبزه بوده هفتشوش سبزه چنان الان هم یکی از اینا سبزه است تا بعد این هفت سبزه بعضیاش که وجود نوشه کم کم تبدیل شده به نیوش یا دانش مثل, مثل سیب، مثل سیر یه باشیزایی هم در تایی این احوالش اضافه شده، بدون اینکه بفهمن قضیه چیه و به این صورت امروز دارم استداریش، حتا اولیش هم که بزرمان سین نبود هفت سبزه بودگی؟ نه یه سیر سبزی سن نه چون سیر سبزه ها رو سه هفت چور هفت سبزه، مثل هفت سبزه، هفت بعض احیاناً تو ده هفت سیم بعد اون وقت درش دخالت کردنش ده هفت چور، نمیم، سیر و سیر و الاخر ده ده ده ده شاید همه کار می کرده خوانیم اصلا اختیار دار پدر همه مردم تو اختیار چون و مال مردم در سوزاران سال در همه جای دنیا سیتم کار بوده یعنی از قبیله های که اندر شروع شده هم شما بالا. با که بالا پالا و کنم که اما شین استاد من مرمون پورده بود اول این رو مطرح گرد پنج تا شین ما سراغ شوشتر نکیم یکی از شعر فیروسی از این پنج شین روی رقبت نتاب ایناش هم خوبه شبو شاهد و شهد و, و هم اونم پنج تا. و و و, و قنیمت به شرکان که من در خدمت کمر تو میان ما و شما عشق از ازل بوده است هزار سال برایت همان نخستین و از این پنجشین او در رحمت ما تاب شب و شاه و شهر و شام و چرا با ولی این پنج تا اولا شیسته نشده بعد در مراسم عید مراسم نوروز هیچ وقت اینا ازش بحثی نشده فنده گوان میکنه معروم پرداود روی حسن زن میتوه ایران باستان داشته که شیفته کار ایران باستان اینا هم بود و وقتی هر نزد از عوستایی و فارسی باستان از ایران باستان اینا اصلا میسی که روح به کنش دمیده میشد این است که این روح هم بفته این شین است و شین به هم البته بدل میشه و فکر کرده این است اما من تصور میکنم که اون سبزه است این مطلب روش هیچ کس هم متعرض نشده یعنی فقط بنده گفتم نمیدونم توی اون به نظرم اون مقالی که نوشتم تو اون مجله که گفتم اون جان نوشتم در حال بعد این مراسم را همیشه ایرانیان تجلیل میکردن شوق زیاد داشتن مسئله مهم این بوده که دشمنی‌های های دیر... دیرینه رو، این پیام انسانی نبوز اینه که دشمنی‌های های دیرینه را از دلشون دور بریزن روی همدیگره ببوسن روز نو و روزی از نو حساب بکنن سعی بکنن که همه اون روز شاد و خرم باشن لباس نو بکوشن شادیشون رو اظهار کنن اون کلوبار قمشون رو گوشه صندوقونه بذارن و مردم مدره نکنن و خب اینا خیلی پیزای مصبتی بوده در این جریان به خصوص که در وقتی هم بوده که همه طبیعت هم شاد بوده و میخندید این که بهتر بوده که آدم ها من سوال ندارم هیچ ایده ملی رو در دینه هیچ ملتی که این اندازه با اید حقیقه قدیعت محفظ و همزمان بشه یعنی کارم بیشتر از این دیگه من نه علمشو دارم نه اینکه که دیگه واقع است و بفرضیم به کار خورم چرا؟ چرا یک دور حرکت انتقالی زمین روی آفتابه در دون جا اتون باشه بعضی دوستان میپرسن که به افق اینجا چقدر افق اونجا چقدر جواب این است افق نداره برای این مرضوط تو حرکت وضعی زمین نیست این مرضوط تو حرکت انتقالی زمین در یک لحظه کره زمین مدار چه میکنه از برج حوت اسلام وارد برج برای برج حمل میگه یعنی اون لحظه که واقع برج هم میشه، اون لحظه نوروزه ممتنی در فیران نخواهدن ساعت دوازده زور باشه در لسانجوریس که عقبتره دوازده شب روزه قبل تا همیزار کل بیشه چه جور اصاب میکردن؟ من نمی‌دونم. البته خیلی گفتم به دوره جمچید، یعنی یعنی دوره تاریخی نیست که ما بخان چیز بدیم میگهی <متنجزو> که جمچید آمد و به فر کیانی توت به دوستی توشان از به فر کیانی یکی تخت چه چمایه به دو گوهر اندر که چون خواستی دی برداشتی همیدون به افر اندر افتاشتی تو خرشی تابان میام هوا نشسته برو شاه فرماندوا فرمیگه که به جمشید بر گوهرم شاندن بران روز را روز نو خاندن. روز و نوروز جمشید تختی ساخته بود که دیوان برداشته بودن به هوا و در اون روز مردم اون روز رو جشت گرفتن تو چی کردن این داستان های جمشید با سلیمان هم از قدیم ترین ادبار به هم آموز شده بنابراین اینکه که دیل تخت جمشید رو بردارو به هوا ببره واسمون بر اونا دنباله افتانه های مربوط سلیمان سوال دو و هستان مردو تیجیز اتخایی که نوروزی نوروزی، نوروزی از این بوده که مردم یک سال ظلم و ستم و و بیچارگی می‌دیدن تا حالا اونو بگذاری توی این قسته هایی که یکی شام می رو که وزیر میشون تناوازی تو توکن ها که دوز میشه تو شام که وزیر می روشااهک میکنه نه اینو در حقیقت اوقده های روانی خودششون رو اوکنن که یه ا رو محکوم باشن خالی میکردن میره نوروزی هم یه چنین ترطیبی است یه آدم می رو می آدم بعدبخت ملو که که به هیچ نحبی به درد حال نمیخورده نمی خورده اینو میگرفتن و می آوردن با جلال و جبروت تمام بعد یه ماده ای فوازی به تنش میمالیدن که این مواد حیرات زا بود داغ می‌شد به طوری که توی برف ذوبه و توی هوای ساعت مجبور به خودشو باد بزنه و اینو سوار چیز میکردن و با فکفه مفصل درست پات تا و دو سه روز بوده هر حکم میخواستن میکرده از هر کاسه بیاد که میخواستن بگیدن مجازات این بوده که اگر نمیدادن یا نافرمانی میگنن با گل اخرا میزدن همه دستاش رو سرخ میکردن مثل گوجه فرنگ پرد کردن و این چیزا و ها میگه تو گل کرد خورده ایداری خدا را صرف اشترد کن خورده همه حال درسته درست یعنی پول طلای خورد نشده است. پول دینار طلا یا لیره طلا باشیم می‌فتن درست بذار و از همون هنوز خورد کردن که می‌گه صد دلاری داشتم خورد کردم خرد خورد کردن این <تصفيق> معنی نمیده. خورد کردم برای این است که اون, اون درست رو که مثلا که 5 گرم بود، یک مثقال بوده می رفتن تبدیل می کنم به دوته نیمه سالی و اون رو تبدیل می کنم به دوته نیمه همین همینجور الاخر و به اون آخرها که می رسیده حتی قرازه های زرد ریزه های دمسفهون و اینا رو هم می بردن و قیمت می به عنوان تلا دیگه چیزی بعد توی داخل گل سرد چون هم چیزای ریزایی که حتن زرده مثل قرازه های زرد مثل خورده های زرد میگه گه چو قرده ایداری خدا را صرف اشتر که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی این میر نوروزی چار پنی روز امیر بوده بعد یه روز از ظهر به بعد دیگه اگر دیده می شد این هر کسی که این می می می رو می هر بلایی می تونه سسترش کنید و این می پنهان پنهار می شد هفته یعنی از اول اف... نهانگاه خود شد پیدا کرده بود اینا و چیز می کرد اینطوری مطلب عوامانه است خیلی اطلاعات در ندارد نداره اطلاعاتی در برش دریم خیلی محدوده یکی دو سه جو داد تا همشور جوینی از اشاره قاطع است و یکی دو جای دیگه به اینجا مرحوم دکتر خانلدی را میر نوروزی به نظرم همون همون اطلاعات بسیار مختصر اینجا جمع کرده یا جمع کرده باشون هم من عرض خدمتتون که امیدوارم اونجو باشی نخیر نخیر یه نختصری شو مرحوم قزوینی در حاشیه در حاشیه حافظ خودش حافظ جات قزوینی آورده کمی از او رو و به هر حال اطلاعات زیادی در باری میرون همین خلاصه های وضیعش همین <متصفی> <متصفی> زرد ریز توی گل گل یعنی گل سرح عزیزم خب اون زرده های ریز رو پشکیه میکنه به زر تو هم ریزه های زرده ریز هست همینو گفتن که سموا حواس من خیلی خوب. اعزم کنم که من حتماً تصویر خانم زند رو خواهش می‌کنم بخونن. نه بابا. نه بابا. نه. من چپ سر شما تلوت بود که ناگاه رشقه قلم شما این دیگه داشتم همین با خودم که من کردم من چه که آمده بود خودم باید روی تو همه خدمت ما عرض کرد و سرمه به نیم که کامل لغم کرده این سلام مرا بیار آقای بهمانی من, من بسطه دیدم این حافظه هر کنیشی خوش می کنیم به همه کنیم به همه کنیم <متحن> نه خیر، همه همه تحتی آخر نیست، هم گرفتاری هم همین یک، نه که خیلی نرزی بل، بعضی همونم نکرده بیاد اینم بده کنم، ستشم این نسکه یکی دیگه؟ اینم نوده نیسته این که من مجبورم بزنم قبل از اینکه این, این کار رو بگم ملازه کنیم غزاله آفز به ترتیب الف پایی مرتب شد یعنی که میدونیم یعنی غزاله آخر الف هست و بعد آخر ده هست و بعد ته هست و آخر اما بسیم مثلا پنجات غزل ته بریم ها؟ اینا که نمیشه همینجوری پشت سر هم بذاریم بی خودی برای اینکه باید پیده کردنش سخت تو راه آمدن پیشنهاد کنن برای این کار و کدوم یکی از این دو راه رو گرفتن یکی است که این تهی ای که هست مثلا تی الان که منطور کار ما برای همه آخرش هست برای منطب کنم بیارن حرف قبل از ته رو الف و ت اخر بیروت ربا تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو قبلش تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو تیو گفت فیوته بعد قاف ته و تهو ته نبوده یا و نبوده می بوده این آوره یا باز قبلیش که خوصمت به استفاق ملاحات جهان گرفت بازم قبلیش هم هست بازم برفته بعد قبل از فیوته که هنوز فیوته خیلیه شین و دیدی که یاد جزتر جورسته تن نده آشن اگر مثلا پنج تا شین بود باز میرن به حتی پیشتریش الف و شین ته بعد به و شین و ته بعد همینش اگه بازم اونم یکی بود میرن سر قبل این یه راه یک راه دیگه این است که همه قضاله ته رو بذارم برگردن به حرف ازبل مصرا ازبل یعنی مثلا ای رو از نظر به خدا می سه بارمت چون با علف شروع شده بذارن افرد همینج بیان پایین تا اصلا کلوت بود رو تو چه اگر مثلا پرشن شنیدم سخن خوش بذارن پشت سر او. یعنی با حرف اول یار افرد ایسا هست که یارم به سلامت چون با یه شروع میشه این رو آخر از چهار هر رو به جای حرف هر حرف اول نزده، اولی که شروع میشه میگیرن خیل انجبی کتابش به این ترتیب معظم شده یعنی حرفای مثلا ب یا ت رو گذاشته بعد اول اون که با علب شروع میشه گذاشته بعد اون که ب شروع میشه بعد اون که با پ شروع میشه تا شما هر کتابی دستون باشه یا به این ترتیب معظم شده یا به اون ترتیب با به این تحضیب راه پیدی کردنش های جیس ساده است واسه این بینید که چه بود که ناگاه رشته یه قلمت میموکست فرمیشه آخرهای حرفتی است ممنون با پیدیه تموم شد که متاسفان در مورد Having, خب مامده نصف بومی اصلا نداشته باشه هره دیگه، هم باز نمی کنید هر جهت پیدا میشه دیگه مامده میموته داشته مامده باشه مامده نونو از میموته، الان من به شما میگم چیه؟ مامده، مامده کنم که اگر داشته باشه یه اوتی فقط هست آنجا در نوازم شکریز با شکایت بک بود جنادا رشته قلم از حبور خدمت ما عرضه شد و کرم هست به که خامه رقم ای سلام مرا کارخامه دوران موادی رقم هست نگویم از من نگویم از به یاد که در حساب خیرد نیست سعب بردرمد مرا زلیل به شکه این توبیر که دولت سرمد عزیز و محترم یا که با سر قرار خواهم کرد چی از سرم برود بر ندارمد بردرمد لحال ما برد شود ولی وقتی که بردمد از خاک کشتگان و من سباز زلط تو با هر گلی ایران روی روی داد در حرمت راده ها دل خستگان چقدر که مدام همیدهند شراب خضر خضر مره او راید وزنشیرش همیدهند شراب خضر در جامعه جمعه درم مهم در تو خرمتش میداد به شکران که خدا داشته محسرمه همیشه وقتی تو ای ایسی سوا خوشباز که جان حافظ دلخفته زنده شد به جمعه بله این وضع قضال نمونه است نه من نخوندم یعنی این قیده رو تکنیم که دقیقا جواب یه نامه هست و این قنزاله های خصوصی رو که مکاتبه به این دو نفر جنمسان نصر باشه ناز، میشه نصر باشه بس اخوانیات اخوانیات یعنی نامه های خصوصی مطالب خصوصی که بابایی آدم گندهی یا لاغل آدمی که برای خاجه عزیز بوده نامهی براش نوشته و خواجم منتظر نبوده که این یه چنین لطفی بکنه حالا هر دلیلی است که میگه چه لطف بود که رشه یعنی ترشو چه لطف بود که رشه قلمت حقوق خدمت ما عرضه که بر کرمه یعنی قلمتو موجب شد که ما رو یاد بکنی و حقوق خدمت گذشته ما رو یاد بیاری به نوع که خامه رقم کرده سلام مرا روشنه که کارخانه دوران من باید بی رقمم وزیر چیزی بوده که با قلم کار میکرده میگه که بی رقمه تو کارخام گردش روزگار بدون رقمه تو نفشه من از من بی به صحب کردی آد. این دیگه نوعی گله است گله خیلی لطیف شاعرانه است یعنی تو که معمولاً یادمون ما نمی کنید لابد اشتباه کردی من نمی اشتباه کردی نگویم از من بی دل به صحب کردی یا بیر حساب کرد صحب نیست ما را زلیل مگردان به شکر این نعمت که داشت دولت سرمد عزیز و محترم هست تاجب سرمت قبلاً حرصده بیا که با سر ظلفت قرار خواهم که از دیگر سرم برود بر ندارم از قدمت اینا روشنه چیزی نداره فقط ما دل تاجه شود ولی که... که چیزی داره آه... هایده میخونه دوست دارم رو که تو به من کی میگی چی کمون بایم وقتی گل نه میگی همینه نه وقت گل نمیده آخی وقتی گل نه یعنی هرگز به <تصفيق> <تصفيق> حال ما دلت آگه شود ولی وقتی که لاله بردمت از خاک کشتگاه قمرت وقتی ما خواب شدیم و کشتگاه قمرتو شدیم و خواب شدیم و لاله هم از خاکمون روید و اون وقت البته یاد ما میاهیم بله خیلی گفتم. سباز زلف این خیلی قشنگه. سباز زلف تو با هر گلی حدیث را. میگه صدق عماز سخنچینه. رقیب تو، مراقب تو کی این سخنچینه در حرم تو راه داد تا بتونه حرفت حرم تو رو ببره با هر کسی بزنه. سباز زلف تو با هر گلی حدیث ایران غریب چه ره قماز داد در هر وقت حال دل خستگان چه غم خست معنی زخمی است و امروز هنوز در افغانستان میان مانده شدی نمیگم گم خسته خستن به من زخم زدن خسته یعنی مجروح یعنی زخمی تو وازحال دل خستگان چه که مدام همی دهن شراب خزر به جام جامعه شراب خزر چیه؟ آب حیات شراب اصلا شراب یعنی نوشیدن در عربی اون چیزی که ما بش میگیم شراب بشمیگم خمر علمه شراب در قرآن من این نوشیدنی نوشابه نوشا شراب خزر یعنی نوشیدنی خز. یعنی آب حیات میگه تو که در جام جام جام گیتی نما آب حیات میخوری از حال کسانی که زخمی و خسته هستند شخمت که یک روز نگشته است. بلد صورت حال پراکنده دلان چه ایگه آن دلم مقیم در تو فرمتش میداد، به شکر آن که خدا داشتر محترم روشن دیگه همیشه وقت تو ایسی ای سبا سبا رو تشبیح میکنه باز سبا رو به ایسا ایسا کارش موجزش زنده کردن مرده بود همیشه وقت تو تو ای, ای سی استوا که جان حافظ دلخسس زنده شد قدما اشاره به زنده بودن می کن. این تاگل بعدی رو فقط میخونم هیچ فرد بس سخنم بفهمین همه اینجا میتونن بخونم من اگر به کسی نمیگم به این دلیلی که پس من بعضی دلشون نمیخواد تا ف... بخند رب سوابی ساز که رب سلامت شما همون نزدیک هست نزدیک سهلی؟ نیه، بسرد سهل یاد، تبایی ندم ندم هم که امروز, که در, امروز که در دست تو هم مرحمتی کن. امروز که در شدم پاک تو آم کن. امروز که در دست به تو رو بیان. ما با نداریم. نداریم سخن. سیر و سلامه. در ویش در ویش مکن ناوز شمشیر حساب خیلی تاوی تر کچک ستانم ستانم قرامت در خرگ در... زن آتش و خم عبروی صاحبی در زن آتش که در خرگ زن آتش که خم عبروی صاحبی برمی شکن از دوشه نصاب امامت از تو بنام و نکن بحث سر سر تو ته بحث سر حافظ تلطل سلسله. فضل مشکلی نیست یکی دو تا کچولی که بگم یکی فریاد که از شش جهت راه راه بزرستم شش جهت میدونید که شرق و خرب و شمال جنوبه و تحت و په شش روسته؟ شیشت ها جز از عیزا معشوق هم میاره پشتش برای هر یکی از یه جهر آن خال و خط و ظلف و روح و آرز و خامن از شیش جهت این شیشتا اینو روش میگهن لفت کنش لفت کنش مورد کن که دو لفت دابرن دو معنی لفت اول به معنی اول لفت ثانی به معنی ثانی شش جهت میره اینم شیشتاش قریاد که از شش جهت هم به آخر آن خواهد و خواهد و ظلف و روح و آرز و خامن. ارز کنم که یکی هم ای آن که به تقریر و بیان در دمزنی از اش من بارها اینجا گفتم که صوفیه میگن تصبف علم حال، علم قال نیست و بسیاری از کیفیات نفسانی و کیفیات درونی همینطوره اینو فراموش نکنید چه جوری به یه پتل نابالک میتونید کیفیت هماهوشی جنسی رو شرده میتونید چیزی بگید؟ چی میکید؟ بگید خوشمزد فکر موانه دیگه هیچور نمیشه باید بگید صد کنبابا چون بزرگ میشید خودت میشن راه دیگه بگید نمیشه حتی چیزای خیلی ساده تر آدمی که در عمره چیز شیرین نخورده میشید اما چه جور مزه شیریشون برای این توجیه میتونی کن اصلا میتونید؟ که امکان؟ رنگ سبز رو که نعیده باشه یه ده اصلا دالتونیز پوررنگی دارن مرضی دالتونیز میشوند فارسی ترجمه که اصلا پوررنگی اینو رنگ قرمز نمیدن با یه در میونم منتقل میشه این دیماری یعنی پچه آدمی که پوررنگه پوررنگی نداره باید پچه اون داره رنگ برای رنگ قرمز چجوری برای میخوان توضیحه این بسیار چیزا هست که آدم باید خودش حس کنه این قابل شرح نیست عشق از اون چیزاست میگه ای آن که به تغریر و بیان دمزنی از عشق عشق همچینه عشق همچونه عشق همچونه ما سمسا حرفی نداریم که عشق قابل بیان نیستش هرچه گوگم عشقا شرح و بیان چون به عشقایم خجر کردم از آن. چیزه رو دیگه مال مولانا هاست عاشقی پیداست از زاری گده نیست بیماری چو بیماری گده علت عاشق و علت ها جداست عشق اصطلاع و اثار خداست چه و چه اینکه بقی اینه همونو میگه که به تقریر و بیان از عشق نمیشه دمزن دیگه چیزی نداره هیچ نداره خب ری کی رامی به بنا ہے ایک کوس تبو اگر نہ کیا چھے بذین خودیے نفس کھینچن چند دقیقه نو شد بیٹن دیویے نو روزو پھر سے پھرتے ہیں وقت کے پاس گرے اپلوتے بھی نہیں رہتے این خود خود سبا به سبا می پرستمد که از کجا به کجا می پرستمد سی برد خایلی که در آفیان قمد اینجا به آشیان وفا می پرستمد. در راه عشق مرحله خور و بود، می بینم از رو دعا می پرستمد هست و از دعای خیر در صحبت شما رو ثباب می‌پرستمد تالشگر قمت نکند من که در خراب جان عزیز خود به نوا می‌پرستمد تیغای و زدر تیشدی هم می‌شینده می‌گوند که آب و سنا می‌پرستمد در روژ خود کفت روژتون اِ خدایی کن کائینه خدایی نما می‌پرستمد ها مطربان شوق ده ده ده ده ده ده ده ده من است آجهیده هند اون رو به و نوا میبرستند سا میبیا در حاکت قیبند و مثل گود با این غزان در این حال اخوانیه، ارفانی هم هست، دو تا ایش هست و مقدار زیادی توش مطلب داره که من باید توضیه بدن نیکی هدهود یکی ثباه هست، ثباه های با سین هدهود اون مورویست که شونه به سر بهش میگن اون چیزی نیست که شما ندیده باشی، همشونی دیدید پوپک بشت میکن فارسش پوپکه پوپک دیدن به هواگی سر از خانگک برکرده به اپلنده را آره رودکی بر قرآن این هود, هود با همین لفظ تن به هوایی سرا سنگک بر خرذه به افرنده را هر آره روزه قرآن این حد, حد با همین لفظ یه رول مهم داره در تفسیر سلیمان و اون ناس که میدونید سلیمان پادشاهی بود در عین پیغنبری گفتن پیغنبریش هم از قرآن داره بادشاه بود که جن و اند و دیب و و درنده و پرنده و چرنده هم فرمانش بودن یه روزی نشسته بود بعد دید که خود نیست گفت مال یا لا خود چه شده که من هدهد رو نمیدینم گفتن نه ایمده اینا گفت که باید بیاد زبان از زبن نهو برای اینکه قیبت کرده لعوه زبان زبن نهو عذابن شدیدن اولا از بحن نهو. تو عذاب شدیدش میکنم یا ذرب هش میکنم. میگم سرش رو و تا بعد هود هد میاد میگن کجا بودین میگه رفته بودم به جایی که مردمش آفتاب می‌فرستن، قومی هستن و زنی بر اونا فرمانده واسه پرگیس بوده و داستان خبر خبروردن بعد نامه سلیمان میفرسته به وسیله هود برای اون ملکه شهر سبا پرگیس او به اسلام اسلام روزگار خودشون دعوت میکنه و بلغیس میاد زن سلیمان میشه و داستان مفصل. به همین دلیل هدهد در چیزا مشخصه و اشاره سشه سبای با اسم شهر بلغیس به ملکه سبا بلغیس و هدهد رو نامبر اونجا بوده هدهد سبای یک بعد نامه سلیمان چون با بسم الله شروع شده شیخ عطار در منطقه خودش خود رو رهبر مرقان میسازه سوی کوه خواه و میگه تو رهبری به دلیل اینکه بسم الله در منقار توسی نامه سلیمان رو اینه هون من سلیمان و اینه بسم الله الرحمه الرحمه, الرحمه. من یادمه که ما در بچگی علت شیطنت بچگی در قرآن کریم یک سوره است بسم الله نداره اون سوره توبه هست شروع میشه برای اطان من الله و رسولهی هرالذی نهاحت تومن المشرکی چون با بیزاری خدا و رسولش از مشرکین آغاز میشه بسم الله که نداره چون بسم الله خشت استفت رحمان و رحیمه مربوط وقتیدن گناه اینجای که بعد عذاب میدن نگه بسم الله سوره توبه بسم الله نداره سوره ای که دسته سلیمان درش هست سوره نمله نمله یعنی مورچه سوره نمل بهش میگن انگه بسم الله اولشه بعد هم نامه سلیمان هم که در اینجا صحبتش هست یه بسم الله به رو کنم ورین یه بار بسم الله وسط سوره هم به عنوان نقل نامی سلیمان آمدید ما بچهی که می گفتیم شیطون اومده این بسم الله از سوره توفه دوزیده به رشته ها دنبال کردم وسط سوره نام هم رنداخته و در رفته <تصفيق> بعد عرض کنم که برحال بعد این هدهد رو دسمای دیگه ای هم روش گذاشتن بعدها یه ادهی که شاید یه ذره, یه ذره رنگ بیرینی هم داشته حرفاشون سمت دلالگی به هدهد دادن و اون رو به قبوادی منصوب کردن ببخشی دوله فاردیش میشه جاکش چون دلغی سواس سلیمان ها برده مسعود سعد یه قصیدهی داره اكثر ديسيشتان فارسی ما اونم دوست تو ویان نمی نمی من تحت کار کام من نمی گز در, در کام زبان همین چهگردم چه چه چه بعد میگه که بعد از این گر پیرهن عمل به عمل یعنی شغل دولتی عامل یعنی کارمند دولت عمل یعنی شغل دولتی گر پیرهن عمل به تن حکام هم پیسه ورود سلیمان یعنی اون کالا با <تصفح> ورزن هدهد میگویند که حیوان است که از بالای هوا آبهای زیر زمینی رو تشکیز و خاصیتی داره که میتونه منابع آب زیر رو تشکیز میست اینا قضایی هدهد اما شهر سوا در ناحیه جنوبی شفه جزیره عربستان در نواحی یمن پهلی یه جای حاصل بسیار خوبی بوده که اش هلال خزویب یعنی هلال سبز به دلیل همون پشت کشاوردی که در قسمت جنوبی شب جزیره عربستان و اینجا شهر سبا در اینجا بوده و مردم صدی بسته بودن با اون صد که شاورزی میکردن آقا رو سوار میکردن ستیلی میاد به نام ستیل ارم اینو رو می اونو خیار بکنه و شهر سباه اونا داخل میشن شهر سباه نزدیک بوده از به نواهی شبجزیر اینا و اینا، چون سویزم نکنده بودن اون وقتی یابون بوده میتونستم برن و بیان فرقیس این طرف بوده سلیمان دستخاش اونورد در کشور یهود در نوای فلسطین و اسرائیل فعلی بوده این قصه از اونجا ای خود خود سبا باز سبا برای سه حالای که دیگه وقتی حافظ میگه دیگه خود خود و شهر سبا که نیست میگه ای سبا باز سبا که منزله یه خود خود منی من تو میبرسم به سبا سبای باسیم یعنی به سرمنزل معشود ای هده هده سبا به سبا میترستم بینگرکه از کجا به کجا میترستم حیف از تاگیری در خاکدان قم زینجا و آشیان اینجا آسمان رفا میترستم و را مرحله قرب و بود نیست میگه دوران با خبر نزدیکن و نزدیکان بی بسر دور جای دیگری باز خود حافظ توی اون احمد الله علام عدلت سلطانی احمد شیخ اوبیس حسن نهیل خانی یه گرچه دوریم به یاد تو قدم نمشیم بعد منزل نبود در سفر رو از راهش مرحله خورب و بعد نیست میبینم از ایانو دعا میفرستم و دعا دعا فعل مازی شد دعا اسمش هر سو خوشم بافلی از دعای خیل در صحبت شمال و سبا می کرستم عرض کردن باد و سبا از شرق می وزه. باد شمال از شمال می وزه. و شمال در در ایران فعلی پسندیده است این نصیم شمال که عشتف دینا با به عنوان اسم انتخاب کرده بود این ماله چیز دیگه خوش خبر باش این نصیم شمال ماله حافظه که به ما میرسد زمانه به ولی در عوستا در, در اقوام کوهند ایرانی شمال جای بدی شمال جهنم. علاوه بر جهنم قوم آریایی فوق العاده سرد. و هرانا آریایی آخرین عقیده‌ای که هست این است که اینا از نواهی در جنوب سیبری در دوره اون یخفنداه بزرگی که تا 5000 سال پیش روی زمین رو گرفت، باعث زیادی از موجودات روی زمین نابود کرد. حیبانات عظیم الجسته در سورا و محمود و اینا در همون یخبندان از این رفتی کنند نفلشون هم تعدادش فوق العاده لاده کهاش این از اون یخبندان تمام آدمی که بیگه که باقیمون ده هزار نفر میشتند دوباره زیاد اینا توی اون یخبندان سرما از نواهی اسم با آجرت کردند مثلا فیتونه و که اونجا با صحبی و بدبختی بسیار دستگریبان بودن هم گروسنگی، هم سرما نراشتن سود و به هم بلی جهنم که از حرف میزدن سرد خیلی در تمام عوستا صحبت این است که شمال جای مدخبی است و جهنم اونجا است و سرمای سوزان و کشنده است. این مسئله تا به حدی بوده است که در عقاید اسلامی هم نفوذ کرده شمال رو به معنی دست چط گرفتن و اصحاب یمین و اصحاب شمال این بودم سوا، سوابگاران میرن دست راست اصحاب یمین و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب شمال ما اصحاب شمال و همچنین در برابر جهنم سوزانی که مربوط به قوم عرب و قوم یهود بوده و پیسه ها ازش داشتن یه جهنم سردم هست هست بنامه زمحریر البته شاید جزا حقاید عوامانه باشون من نمیتونم بلی معتقدم که سادات پرزندان بلافصل پیغمبر تنشون به آتش نمیسوزه بنابراین گناهکاران سادات رو میبرم به زنهری که <صحیح> <صحیح> اونجا مثل ماهی های شیلاف خوش بیشن <صحیح> ارز کنم که اما در, در, در دوره برزنسان در عواخر این دوره های اخیر شمال پسندیده هر صبح شام قافلی دعا از دعای خیر در صحبت شمال سبا میفرستن تا لشکر خمت نکن از دل خراب جان عزیز خود به نوا میتونه نوا گروگان گروگانی نوا به منی گرویست اونم هست آهنگ و دستانم هست با نوا یه منیش گروگانه به خصوص آدمی که به گروگان میترسدن پلان رئیس ایل مثلا پسرش رو میکرسه دید پا تخت تا عنوان این که یاویگری اینوش مستم ندا حالشکر غم هست نکند مال دل خراب جان عزیز خود به ندا میکرسن ساقی بیا که حافظ به مجده گفت با درد صبر کن که دبا میکرسن این مقام رضا با در ثبت کردن مقام راز یعنی در جایی که آدمی از هیچ چیز شکایت نکنین دیگه چیزی نداره جز اینکه آخرش خست طلب کرده هاافس اینکه میخواد خودش داره میگه از قبول طرف چهافظ. سرود مجلس ما ذکر خیر توست تعجیل کن یا بشتاب کن که اسب و غبا میفرستمد این روش این حسن طلب افق و غبا خواسته دیگه اونتها بارد این ترین بیانی یه آدم زیبا شاهکار صنعت خداست دیگه میگه شاهکار صنعت الهی رو میخوای در روی خود میگاه کن فایینه خدا آینه ما این زیبایی این جمیل و میاهب بل جمال می گه خدا زیبا از و زیبایی رو دوست داره پنابراین روی زیبا آینه خداینما خب دیگه از علماء کسی در طلب ندید بخون شما بخواه برسار باید باید باید باید به خدا هایی سپارمت جانمی به دوست دامن نکشم زیر پای خال باونم کن به درد دامن به دارمت به دارمت به شکرید و آوه باروه بزنید من کسته و 4 این سه روز خونم بری سه تا آخر قبل از تخلص که خورازو خوردم سه روز بعد بینی ها رو سه روز فقط دارم فقط اوه اینا سه روز نرس خونم بری فصانه شام خلاص یکی میگریم و مرادم از این سیل اشوار دو تا بارم هم ده گرم زیر سه تا اینا نداره ما وا یه اشکال هست یه چیزی نشون میده او این هست که به در اینجا هست در اون بیت دیگه هست و نصفاندری تکرار شده و حافظ این تکرار رو ده. معمولا نهیم حالا کار نداریم بریم سر مطلبش عرض کنم که یکی کلمه محراب محراب به این صورتی اینجا نوشته خواهی اصلا برای زیادی حرف حرف یعنی جایی که من او هیچ ارتباطی با, با جنگ نداشته باید ارد کنم که آبه و آبه یعنی گنبد جرم آبه یعنی جای گومبه شکل جرم هم هست سرداب ندرم میدونی دیانه در لیاز دن زمی زمی بسیار خشک نام داشته تا هم پایارم درزمی که چطه خشکه پیش میگم سرداب آبی در کار نیست این جای سر که فرکش در بی با خواه آجوری منحنه شکلی شاه همه دون بوده یعنی بنای گمبدی شکلون شد سابه. یعنی سه آبه سه شهری بوده که سه تو گمبد شده سا میدونیم <متحدث> که محاور مهر پرستان هم سختش گمبه بیشکل بسیار بسیار شبیه بوده است نه زورخونه های حالا زورخونه شعبون جفری خیلی زورخونه های قدمی که هنوز بعضیش در دوش کنار شهرشتان اینا ها اولا خیلی پوچید حتما زرخونه جای پنشش دفر که وضع شوانه حتما باید جای بود. حتما باید جناب آب ردن برشن و حتما باید و در افتاقش تمام این خصوصیات خصوصیات محاوید مهرین اولین ظاهرن این مهراب، باهه عدمت باید باشه و مهراب یعنی احل فرازی گنبد گنبد محبود محبود این به این صورت شما تو فارسی و عربی به صورت چیزش یه را از دفاعی ازش که سخت به محراب های مساجد چند که و این تعجب نداره برای اینکه وقتی که الان خودمون فرض میکنی که ما ایرانیایی حسول اسلامی عربه آماده و با ما هم اهلی شهری هستیم همه تصمیم شدیم و قبول کردیم که اسلامی بفردیم بسیار اینا میگونم میخوان مسجد بسیار کجور مسجد بسیار خونه آقای صحابی یا خونه آقای گراموری نمیتونم مسجد بکنم یه اماکن عمومی وجود داشته که معمولا معددها بوده هیچ ولد بی دین اصلا در دنیا وجود در اشتید. برای این محابض قبلی رو که من زرگشتی بودیم، مالی محری بودیم، مرک میگرفتن، همینجر مدیل بمسجد برایانچه یه مقداری از معماری این محابض قبلی در مساجد باقید این من صلاحیت نگیرم در این باب مطالعه کنم، باید کشم که در تاریخ هنر کار میکنم، در تاریخ عدیات کار میکنم و یه مخواری هم اینا بلدن که من هیچ الحمدلله بلد نیستنم اینا باید تحقیق بکنن در این واقع که چه اندرزه اینا در هم دیگه اثر ولی اون چه مسلمه اثر گذاشتن وقتی کلیسی های سند، صوفیه برستن که نیگر فونستان، فینوپلو میگیرن تبدیل میکنن مسجد آیا صوفیه ها خب بیایمه میمونه مهماری این همین مطلع بوده مهراب معلولاً با ساخش ماننشه این با اون ساخش به احتمال مهرابی رفت گیریشه هر و آب و آباش منی گمبه ده مهرم نهره این شبانه که به نیزا با خطاً و امسیباً بیرد منی هر مهرابی یا همونو که تا حفظ کرده من نمیتونم یه مقلی در سکر میداده بار در این باقیه که فصلن هیچ تینه رو کنبال کرد نه محراب افروی از دن ما تا سهرگاهی بر آلمو در جردن چچو جرد بایدن تو دن سوی حاروط داخلی و ماروط قسطشون در قرآن کریم آمد در خور قرآن هم آمده و یه چیزای هست در قرآن نیست ولی در تفسیر آمده مثلا اسم اون زنی که با این طب بازی میکرد در قرآن که نیامده هیچ در کتاب مقدس در دورات هم نیامده زلیخان نیست اسمش چیزایی از این قصد ولی من استرها و تمارات که گفتن که دو تا فرشته بودن گفتن خدا یا یعنی این بشر چی خواهر کردی؟ اونجا فساد میکنه اون شرفت داره و خشم داره و هزار تو مزخر واضی داره ما حاضریم بریم در دنیا و تو رو عباره تو هنسان گفت نیتون اینا اگر اون که رو در خلقت آدم جا دادیم در شما باشه، نمی‌تونی نمیتون اینجا رو خوشم چرا؟ گفت اگر که منحرف شدین چی؟ گفتن که هر جور عذابی کنید خدا هر بسیار این دوتا آدم بیتون فرشت مال آلم باره بودن علم کاملی داشتن و شغور کاملی داشتن و عقل کاملی داشتن در وقت اومدن ویزن که یکی تو، و یکی ماروط و در بابل بابل که میتونید تا تخت بابل یا کشور در همین بیگون نحره اونجا مشکول داغاری و قضا روزی زنی زن زیبایی یا نه آمدن و زنه که روشه عبدویلشون بدوندر اینا مایل شد و بعد خواستن که با او خوشباهادشون بشه گفت نه باید اسم عظم برن یاد بدین و بلاخره اسم از اینا یاد گرفت و بعد اینا رو باداشت به تاکران و هنواز ملاهی و مناهی فس و فسق و فوجور و آخر هم رو به مراد برسن و خودش هم به صورت ستارهی شد برخد به آسمان این ستارهی جمعه بگر تحصیل های فارسی بیدوه یا بیدخت بند و بعد این پرشتگان خطاب که شما که بند آب و, و خیلید گردین کلاسی این که حالا عذاب دنیا میخوان یا عذاب آخرت گفتن ما طاقت عذاب آخرت نداریم و همون عذاب دنیا برمیخوان دفتن در طایب یک موی سر آویشن با قیامت اونجا عذابشون می کنن و یه علمان ناف به مردم جازوگری می آموندن اون که جازو در دنیا معروف و مشهور شده اثر تعلیمات این حاروط و ماروز این حصه در حصه تا طول اونم و با اینکه ملائکه بوده دو تا ملج دو تا ولی ور آ دستو ایست دو تا فرشته است چه به این درست می من نمیدونم چجوریه ولی شباهت داره یکی به نام هاورو بطا هاورو بطا یکی به اسم امرتان که از شده پوردار و اول ساست همونی که در پاسید شده فرده هاست این ها تو ماه سال شمسی است که میدونید اصلا اسم دوتا فرشته است. و اسم ماه های دیگر سال شمسی هم اصلا اسم فرشتگان اسم ایزدان دین زرداشته ایزد میش که از بزرگترین ایزدان دین زرداشته همچنین در خورداد که نگهبان مثل که گیاهانه درشتی نگهبانی گیاهانه و امرتاد یعنی نمردنی ها حیلت که و امرتاد یعنی جاویدان من اون دکتر موین مقالهی نوشته و نوشته از که خارول تمرود و اقل اسم خارول تمرود صدت تحریف شده خورداد و مرداده با این افثانه رو حالا چجوری چیز کردن ما هم حالت متاسبه نخونده افنیش ولی به هر حال حقیقی کرداریم با ما به هر حال باید سوی که گر بایدم شدن سوی حاروط بابلی این سر اون شاه گر بایدم شدن سوی حاروط بابلی صدقون ساهری بکننم تا بیارم احس کنم که یک چیزی نوری فیل جمله از بیت آخر یعنی خلاصی حافظ شراب شاهد رندی نغذتو فیل جمله میکنی و سالی میکنی منم میکنی منم چیزی قایز سرنده میکرد من کردن این سرانطوری پهلوی اول اعضا که هوشی و اردوشتی که مباشر مجلس بود اول در تقدیم مجلس شورا هر دوی صدای دستور که اونجا برگزار شده نوشت امور داد و گفت این برای این در اوایل اواخر تهاتی یعنی نمردنی و بنابراین بعضی میگیم امور داد یعنی نمرگنی و بعضی میگیم مرداد یعنی مردنی این ظاهر این استعدال درسته ولی ای که این اعینه در فارسی اصلا نیاهد این هیچ کاف استعمال نشته و از قدیمتن این ادواز از زبان فارسی، این ماه مرداد کنده شده تازه نیست سعدی میگه یکی قلب مرداد محتوز بگر سه تیمر در خاطر آسود بگر خرم هفته بنابراین این اعینه اصلا نایمده و ما اسم این در فارسی امروز مرداده و به مفهوم معنیشم پری نداریم اسم پنجمه ماه سالی شمسید هستیش امریتا تو در زبون عوستایی ولی این اعیه نفی به فارسی امروز من بغل نشد خیلی چیز از اینجوری یا اله فنون علامت قضاق قدر ورزندی اله فنون بون افراد شه افیلیشه اردشیر یعنی اردشیر بسر بابت اله فنون مزدک یعنی مزدک بسر بامداد ولی علامتی نمیتونی حسن فاقیان یعنی حسن بسر فاقی نمیشک نایین علامت باش مال دو تا سه تا اسم به اون صورت از پهلتی مایتو باشی کنن این عینه که یه ای دونه شم نهیم دادی هیچ نهیم دادی نمیتونیم یه هم هزار کال باید باید باید بایدیم موضوعی بکنم امورداد و پس چهر تعدیرم بکنم اینجا قلبه امورداد محبوب بکنم نمیشه که تازفت نهما آیت آبان تازفت تیرما پاسد مورداد بکنم تازفت تیرما باشد امورداد نمیشه پھر اس نے کلاس میں کوائنٹڈ کہ آج جو یہاں از سنوارا جاتا تو این از من نقضیر قمده خنجر تو هم این نیموته رو جاشون کلک جده یه تجای بیگریم و مرادم از این سیل عشقار تخم محبت که دل در بفارم بارم دهت کرم سوی خودتا به سوی در در بدم تو هر از دل ساده؟ نه <تصفيق> خب، از کنم که این قضل از سر پرونده کنم ولیدش اینست که سالهای سال کم سال،, سال این قضل سرزد من افتاده بود و با... خیمی خوندن و حیل مثل لشت که هر داخل گوشت بلند بشید داری دیگه لفافت کرده همینطور از لذت بود با... و این وضال هم بیشتر است، ولی اشاره بایی به بعضی خصوصی زندگی چم کرده که اشاره می کنند میگه زن یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکتدان عشقی کشتشت و این هر خدمتی که کردم یارب مباب کسا مخدوم بی را جامی نمیده هد کست برشنها نافذ غزنی آب من تو زهنم آبیه فرندان آبی نمیده هد ولی شناسان از هرچند خان دور بی آبن رویا زرد نکوه بیو کو صاحب کشتر چق مستیزا آورد بر روا نباشر خون ریز در این شد سیاه هم گم گشت را از گوچه ای ای که از هر طرف گرفتن جد بحش و بخه یاد ها از این بیابان این این راه را نهایت صورت کجا همان برد از ست هزار منزل بیشت در دیاریت اشکت چش ست فردان ور خود به سان آخر ز برد در چانده که برد اینم ور خود حتما باید بشه یکی هر از که خیلی چیز نداره مختون یعنی آقا و عرباب مختون یعنی حاجه یکی که خدمت دارشون نداره این قصه سوچ و شکایت با هم محافظ خیلی آورده یکی دیگری یا اون قزل دوشفتان در میکر به خواب آروده خیره پردهمان و سجاده شراب که باید میگه میگه جهان فستان بازه چطور اینا حافظ جهان گفتم جهان جهان گل اید که به آرازنه ای نوازی به اشنایان رای اش عشق گشتند و نگشتند به گفت حافظ لغز و نکتر آه از این بطفل انواع ایتا از یه وقت فشار که ما درس نده یه وقتمون که ما از زیر درخت خودشه یاره آفتسم کو آفتس یه وقت یه رازم مستویاره مافول از این دوست به اندازه حسابات دوست از حسابات که فردا شکایت فان یار دل نوا شکری عاشق فان یار عشقی خوش تشنویم میکار شفایتشونی که مخلوم بی انایتی من هر دردگی که تعدم بی موضوع نبود اما او به من انایتی باز نداشت یارب ما باید چند را مخلوم بی انایت رندان تشنویت را آب نمیده هر کن اویی بدیشناسان رفتند از این بلا گله می کنند هر چند بردی آبم روی از درست نتاب آبم آب یعنی آب روید جا آب هم از این کلماتی که ده ها معنی داره دویست ها معنی داره ده هم یکیش رنگ رخ ساره خوش آب رنگ آن کلمه سرخ آب و سفید آب این هایش بودم آب روید نیست پودره آب نده سرحاب یعنی چیزی که رنگ چهره سرح بود سفید آب یعنی مادهی که رنگ چهره سفید آب یعنی رنگ چهره بی که منی آبی رویسی هرچند بردی آبم روی از درد نتادم جورا طبیب بشتر که از مدهی جا آبیم سعدی میگه که غیرت هم یا شکا آوگد از طب هر کس. درده اه پا نمیبرم باشد با. نمی با, با. درده دوستانم حذیب نمود بوده، حذیب پلکاره ایگانا. هر چند بردی آبام روی از درخت آبام که اونقدر حذیب خش درک از مدتی راه آبی. در زور فتون کمان داش ایدول ماتی، هنگام کرها بریده میشی با سرموای سرها برینده و, و نکردم هزاران سر چیز شاعرانه ما را و پسندید هم جان این شب سیاه هم مقام حیرت در این شب سیاه هم گم گشت راه من بود از گوشه برون آش ای از هر طرف که رفتن جز بحشت هم زن ها و این راه, این راه را نهایت این راه کجا سورت یعنی خیال کردن و میگه هر کرا سورت ببندت را هر ببندت دارد ولی جان. راقفان در بیش صاحب در را حاضران خاند اگر ناخش قب دلیداری به دلبنگی بده دل. زایان که سلطان باجرای عقل بردن پیش او و فرمان جنر آخرت هست جانا تنگیه انجام بود آن دو سو 97 دریج سو کپی دو راست دیگر ام غرند راهیات سو کپی دو تا بسطه سه سال من زن یک در فیاض قریب من زن یعنی دوازده دومه ۱۰۰ گیرومتر چقدر؟ 8 گیرومتر، پنج مایل، ۷ مایل و نیمی منزل، البته اگه سرگلا باشه کتاتره جای ساخت باشه، شایدی کم دیلتره در حدود دو پشمتر اما صد هزار این جماعته یعنی منزلهای بسیار صد هزار منزل بیش <تصفيق> که بیش هزار منزل چی میشه؟ این که پیداس یعنی منازل بسیار راه راه نهایت نهایت اینو کجا میتصبر کرد در برایتش ویش از هزار منزل هست عشق هست به فریاد ور خود به حافظ قرآن به برد بخانی در چهازه باید میگه حتی تا اگر مثل حافظ قرآن روز در چهازه باید از بعد بخانی بازم عشق به اون قرآن در چادره برد خوندن به فریاد قرآن در چادره برد خوندن هنچه هنچه حافظ میخونده ولی یعنی چی نه هر که قرآن بوده اول که نوشته نبوده اونجا. قرآن رو مینوشتن تیکیده ولی تدویم نشده بوده بین دوتا جرم مصحف درست نایی اینو عثمان درسته هر کسی سی نفر بودن سه دوازه نفر بودن بینام رو کتاب وحق کاتب وحقی که نازل شد هر کدوم از اینا که دم اون آیه رو می یه علیه نعوی طالب هم روز کفتار روح موابی هم روز کفتار کسانی که سبب داشتن باید خیلی زیاد هم نبود اینا روی پیچه چوب روی پوست روی بستخون شونه گستن روی بزار مختلف می نوشتن این رو فکر کیسه این مثلا هر ولی اینا تدمین نشد بود، تنظیم نشده بود در حالی که احکام قرآن سر جاش بود و اجرا می شد تا خود جهاد شوتن سر جاش و نمازش مسلمانینا می قران رو از بردشت باطن اول اسلام زبون مادریشون بود این مشکلی نبود عربی و سمات که نصف زبون خارجی روشون سخت زبون مادریشون بود که یاد گرفتن در دوران خلافت ابوبکر یه اددهی وقتی که ابو بکش میفرسته حق و حساب میگیرن خمس و زکات میگیرن نمیدن میگن ما اینو به محمد میدهدیم حالا بیگه نمیدن خبانه رو مشاقران ابو بکش میگن که بهتر فشار نیاجیم اینا چدید رستاوند بر میگن ابو بکش میگه که نه من ناتفارم تشار به هم که اگر الان راه بدم و کوچکترین روشنه ایجاد کنم فرده هیچ چیزی از این دین جواب میده که باید بدیم ما میگیم میگنم ماسته مسال بعد بس مرتب دنگاه روش اهل ردی یعنی کسانی که مرتب حبوبکس، لشکر هر چیز میکنه به سرداری خالده به و میفرسته به جنگ بسیار سمگین تختی به نام قتال اهل و در این جنگ شاید پنجاه از حافظان قرآن گوشته کم کم خطر احساس میشه که ممکنه یه قسمتی از این ها از بعد عمر خیلی دوست نداشته این کار اصلا نوشتن اینا رو دوست نداشته کتاب کتابو دوست نداشته تا دوره عثمان میرسه عثمان قرآن رو و تعدیمش این که میگه که هر کسی مصحفی داره حتی برای خودش قرآنی درست کرده بیاره چند نفر میدن که داشتن یکی علی بوده یکی طال دکتر عمر بوده که زن پیغمبر بوده یکی عبدالله ابن مصدیف بوده کسان دیگری هم بودن هر کدوم مقسمتی رو که داشتن حالتا اینا استاندارد نشد رو هر کدوم مقسمت که داشتن میارن فراشمان اینا رو مقابله میکنه و بعد میگه که هر کسی آی از قرآن میدونه بیاد و بگه ما بنویسی مشروطه بر دو تا شاهد. دید. وقتا میگن یه آید روما از دوستش که من آیهی از پیغمبر شنیدم آیا نه ابن در علف دهرس بعد میگه تو شاهدی هم کسی تو واحی این من فقط تنها بودم حتی سنو فرمودن عثمانه من نمی به تو اینجور ده کتاب موسیقی نمیگه حاضر اینست که بعد این قرآن درستی ولی تازه هم وقتاً که نوشته شد قرآن که نقطه نداشت زیرزور نداشت هیچی نداشت آنها بردیم کسانی بودن این قرآن دی نقطه و زیرزور رو میخوندن و اینا از قصداداشون سینه و سینه یاد درسته بودن اینا رو شونوسم قاری, قاری معروف خیلی زیاد بودن معروف حریمهشون هفت تا، بهشون میگن قروا سبعه. به طریق آنها هم گفتن که معروف‌ترین قبیله 10 تا بود. در حال ولی قروا سبعه چه عاصم و ابن کسیری و الحسن بن عبدالله بن مسعود و ابی هر کدوم از اینا تابع رابیده که باز دو نفر از اینا ربایت که این دو نفر هم باز یه یکجور ربایت میکردن و یکی چیز یک یک دیگر ربایت میکردن عوضه در دوزیات فکر میشه بناباری میشه 14 ربایت ما حافظ وقتی قرآن رو میخوند یه رو که میخوند میگو که این آیه در قرآن اینجوریه این ابن کسیر این که میخونده ابن مصر. تمام اختلاف ربایتها رو از اطلاعش فتنها حافظ نبود که چنین چیزی بود حتی خیام که معروف از پکلهی پرسی و فت از این حرفا در کتاب تطمیه ثبان و نوشته شده که یه روزی این فقیه مرد دانشمند چیزی با حاکم شهر چیزی که همون بوده لونیتن روح لونیتن پسته سر خراهت یه آیه افتلاف بده اون حاکم شنب و اون فقیه در همین هیل خیام وارده یه گرم خونه میشه هم بعد اون فقیه میگه علالخبیره سبه اینا یعنی یه آدم خیدره برمود به آدم پارشناف برمود تا میان مطرح میکنه میگن که ما این آیات ما یه ای داریم اون اینجور میدومن اینجور میگم نظر اینجو چهانش میگه خیام تمام اختلاف دراعتها رو خوند کیه کی تمام ها رو بعد هم گفت من کدوم روایت رو ترکیم میدم و طوری راجع به اون حس بگلال که جای حرف برای هیچ کس با میدم میگه اون فقیه گفت کس دران ماه هم افثاله کرد خداوند رو زیاد کنه ما فکر نمی‌کردیم که هیچ مغری هیچ کسی که فندش قرآت قرآنه به این دقت و با این استحکام که تونه در این زمینه داد سخن بده و تا چه رسد به توی حکیم دیازی و منحکیم بره از این که فکر مثلا با این کاریت حافظی یک کتاب هست به نام تذکرت و الوبتاز این شرح حال حافظان قرآن حالتا آخوزی برآن تجربه کسی که برآن رو هست داشت روشه گفت آبای خوش به خانه بنابراین برزر که همه برآن هم هست کنم به محافظ از منابع مختلف کماریت یعنی پاکدان مختلف به برآن بودم از که مجتوب بشه چیلی؟ نوقع اختلاف نظری بشید به راه و دست های مختلفه بودم؟ و اینا متقب سلام خدا کمال درکت حالا انجیل این آسمانی گفتن خود که هم و میگه بسیار ولی شما برخونید کاملاً از خود نوشته. طورت احساس با در ضرق مثلاً هزار تا وزار کنسر سال رفل اشخاص مخلف نوشید یعنی کارنامه قوم یهوده که خیراتمندان اون قوم یکی یکی نوشته یا انجیل و یک چیزی تدمیم نشد اینجا بودی موعظه این که حتی اعده و حتی اعده های اعده ای گفتن که ما از گفتار این چیزها رو بیاد داری. که چهارتاش الان انجول رسمی و قابل قبوله یه چند تا مردوده که هست کسانی روایت کردن قبول نده هیچ به این صورت که کسی باشه و بگه این از جانب خورا آمده و به من رعی شده و بعد منویسن به اون تصویر نبود و دعوی بکنه فرقی بردی که اگر کسی میتونه یک آیه مثل اون میاد اون خیرانبر مستعی بود بوده این از آلم بالاست و وقتی خودشون هرکی می زدن می که این حدیث، این گفتار من سلام خدا نیست. علاوه برای این وقتی آیه می خواهد نازولیشو حالت این تغییر می کرد و فیده بود که موقع حضور و وحیه با بعد من می فرموندن، حتی جاشم تعیین می که این دو تا آیه رو برید تایی یعنی خیلی به این صورت و این ما اون ایست که ندارن ولی ما بعدا که, هم که کلام مقدس رو هم درو کتاب آسمان خود مسیحیه منظور بحث سلام خدا میگه که مسیح خود به طرف خدا و خود خدا کلام مسیح میدونه ولی کلام مسیح چه وسیله ی آدمی ربایت شده یعنی لافظان به لا نیست مقصود گفته در حیطه تمام این همه فرقه مختلف